بله بله آقای محمدزاده آقای محمدزاده اوکی مرسی چنگ <تصفيق> احمد آ <تصفيق> چرا تو منو خوشحالم کردی <تصفيق> <تصفيق> خیلی خیلی خوش اومدید بشین بشین ها اگه جلو نمی آمدی و یا اسممو صدا نمیزدی امکان نداشت بشناسمت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 با این که زمان ظاهرتو قارد کرده اخلاق دواز نشد. یاد تو روی در خونه دیدم خیلی تعجب کردم خوش تو ماشاله حفظ کردی شنیدم تو هم خارج بودی درسته؟ زورامو زده سه سال بیشتر دوم نیه بردن آخرش اومدن به خاک وطن <تصفيق> موقع آمدنم با خانومم اختلاف بدو کردم اون وقت قضیه زنت؟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 Thank you.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 خود اینو این مرغان قاغو مسروات دانشگاه داره دیر میشه فکر نمیکردم این وقت روز با اینکه اینقدر شلوغ باشه شلوغ دیگه دوست شمالتون چنده؟ شماره چی؟ شماره نوبتتون آها شماره دو هشت خب مال من یک. شما بیان کارتون انجام بدین کارتون واجبه میخواید دانشگاه من وقت زیاد دارم بفرمایم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 شماهاتون از رو قبض حبس شده. <تصفيق> خدا حافظ. <اسلامت. عرض> <صفح> سلام. خانم ببخشید شما مشناختی؟ نه ولی به جا نمیارم. پیری دیگه. منم.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 وقتی تو محاجمه هنگی یک یه تو قرم شد قرنشو قربونه درم قربونه شکلی قربونه یه دست سادشم یه ایچیشی عزیزم میکی موز کی بری بچم خریده؟ بابایی بوده بیگه بابایی با بادر بزرگ نکن باید نمی کن نمی اگه وسط قش کرده یعنی هنوز دوستت داره فراموشش هم نکردم خوب خوب تا اینجا خوب پیشرفت کردی ادامه بده <تصفيق> مجید این مرادی باید واسه تو سرمش باشه یاد بگی بله اومدی چیکار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 شب ایمیل داری ایمیل لازم ای همه هم خورده من صحبونم نخوردم نه منظورم میل به غذا نیست منظورم ایمیل اه اه، اه، کامپیوتر داری؟ یه حرفا چی چیه میزنی؟ ای کار همون جوانجه قلکان کنی من برای این کارا دیگه پیر شده من پیری نمی بینم من ذات پاکتو می بینم که نظیرشو ندیدم بونکوخ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 من دیگه نمیتونم زیاد باید صحبت بکنم میفهمنه؟ خداحافظ میدونی تو خیلی داری سخت میگیدی نمیخوام این رو بگم ولی آدم میدازی توی ترافیک و استرس آره بیه کم هیچی مادرم من توی اتاق باید سلام میرسونه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 نگاه نکن تو ند نیست ا ازت پریددن بب همدی که نووز هادیم باشه؟ تا وقتی من در کناردم از هیچی نکن اگر یورو دارید نفروشید اگرم ندارید پیشنهاد می کنمم بخرین چون داره میره بالا بعدا نگین چرا به من نگفتی. بابا تو رو خدا حرف تجارت بذارین کنار. فکر مهمونی امشب باشیم که توپ توپ اما جون یادت نره ها بیا ببین هوشنگ چه میکنه؟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 ما یه قولی به شما دادیم رو قولمونم هست. میدونم. به خدا من اگه یه روز ای خوشگل خوشکلومو نبینم دق درم اونم به چش من کارم راست ریز میکنم که ایشالا هممون با هم دیگه بریم با سپولشم نخور خدا بزرگ با هم؟ شما میام؟ کجا؟ مگه شما نگفتی میخوای بری پابوسه امام رضا؟ من یه دوست نداشته بری؟ اینجور که بایداز مارم تلبی ده میریم هم فال هم تماشا هم زیارت میکنی هم سیاحت هرچی قسمت باشه میدونم <تصفيق> میفهمم من سعی تو خودتو ناراحت نکن ولی بس از پسش بر نمیام نمیتونم احمد فرامورشون بکن خدافز چی شده احمد جون ایچی برای همیشه ازم خدافزی کرد شما به مهمونیتون برسی حالا میخوای چیکار کار کنی؟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 به باونه خوشبختی اصرار دارن حتما خودشونو بعد بکن. تو کارت راه حل دارید به شرطی که خودت سختش نکنی تو اصلا چرا دوست داری لغمه رو دور سرت به چرخونی و بخوری <تصفح> یه سیره محرمیتو و حتما ماید علمشنگه را بیابده <تصفح> اصلا روز چهارشنبه، روز میلاد پیغمبر روز بهتر از این تر از این داریم آقا جان از هیچی هم نترس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 دخترشو دومادش جلو و من یه دعو و رافی را انداختن که باید بودی و میدیدی حالا ولش کن شام چی بختی عزیز از... حالا نمیشد یه زنگ بزنی فکر کردم دوباره حالتون بد شده مردم از نگرانیم <تصفيق> ببخش تق با تو قربونترا سفیده کجاست کجا نم تونستم که شمار ببرم وسط دعوا عزیزم مادربزرگت وسط لافتره کونده قربونت برم قش شدام خانم لاف درکند تابیل بگیر سفیده بیا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 با بزرگ که میری بیرون این آقا هم با تو میاد اگه خبرجینی کنه اما آقا اگه برا میخواید اگه؟ مورد یا این آقای و ماما کجا میشون با بردونه؟ سینما نه نه وقت ندارم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 آخه از اون سن و ساله تو خجلت نمی که این تلفنش میدم مخابرات تا پدر پدرس دوستاشو بیارن جلو چشش الو؟ حلو صدا نمیاد منم اخته هم نمیتونم بلند صحبت بکنم احمد از او چیز که میترسیدم سر رو با من جایی نخوان من اوتو رو به هم دیده نمیتونی چه حرف های بارم کردن تو عمرو مقد کوچیک نشده بود. دیگه به من تلفن نکن چون گیره تلفن رو کنترل میکنه خدایا باشه ازاتون سرد میشه من گوشتم نیست شما بخوری نه شام خورده نه سبونه به خدا جا تو آخرش با این کارت مامانمون تقش میدی. کسی که آخر عمری فکر آبروی خودش و خانوادش نباشه هر بلایی زرش بیاد حقشه ایمون ها چیه داری میگی؟ یعنی میخوای بگی مامان بنده تو این سن و سال بعد از جنابالی اجازه بگیره که باقی حرف بزنه باقی حرف نزنه کجا بره کجا بیاد چیکار کنه چی کار نکنه خدا که تو مخت عیب کرده آره مخم عیب کرده هر که دیگه جای من بود مخش میترکید یه پیرزن تو این سن و سال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 بفرمین ماده سلام علیکم بفرمین اینجا بفرمین بفرمین پس آقا پیمان شما هستی افسانه از شما برای من خیلی تعریف کرده بود هممون مشتاق بودیم شما رو ببینیم خیلی شما لطف داریم باعث افتخارون وله اینجور که پیدا ازمس که ایشون یا ازدواج قبلی هم داشتن البته ازدواج که نه خیلی ازدواج که نبود بود فقط یه عقد بود که اونم سر دو ماه به هم خورد چرا به هم خورد پسر من می خوب تحقیق نکردیم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 دیدی مرد که شیاد حقوق باز هم خونه ما رو از هم پاشون هم قابلابون و تو ما حل برد خدا کنه به موقع برسیم این حرفا چی میزنی جهانگیر چرا دیوونه شدی؟ بابا اون دیگه ش... شوهرشه اونا با هم ازدواج کردند تازه اون مادر رو به چش یه عاشق نگاه میکنه نه مثل تو شوهر عاشق عاشق یه پیرزن اون قیشت خوابلوه از اون شیگل گشت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 نه اگر بود که من میدیدمش حالا من برم توی سال همه جا ما میریم اون طرف شاید ببینیمش. اگر پیدا کردی به ما خبر بده سلام عرض کرده.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 اگر هنوز نرفته باشند تو سالون پرواز در پشت شیش های امر میشه دیده شون ببار ببینو را ها جن اینجا چی کار میکنه اینجا چیکار کار میکنه سر تو بیار بالا خوب لبخند بزن دست بده خدافزی کن و بریم باشیم بنامجورا بیرست بیدر بیرم بریم بریم بریم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 من دلخوری؟ اگه... اگه دلخورم نکنیم بهم زور نگیر نه چرا و با دلخور باشم صبونه خوردی؟ صبونم دیلی نمیشه میخورم میریم خونه ما یه املت مشت با هم میزنیم بعد میشنی با هم اختلاط مکنیم چطوره؟ شما داری سر کار میزنیم آقا جمان آخه اندازه یه که من بخوام سر کارت بذارم شاد چی؟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 اینو نگاه کن. یادت هست؟ حالم که بهت ثابت بشه که هیچ وقت فراموشش نکردم، تو هم اینو نگاه کن. حالا کامل شد.